های فولکلور ارمنستان نوشته گورگیس آغاسی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فرید خام سلام و سد سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی در این برنامه با داستان دیگری از سری داستان‌های فولکلور ارامنه در خدمت شما هستم اسم این داستان روزی که خورشید از مغرب طلوع کرد با هم می‌شنویم در روزگاران قدیم یه هیزم شکن بود که با همسرش تنها تنها زندگی میکرد و خداوند نه بچهی بهش میداد و نه اینکه قوم و خیشی داشت هر روز صبح که آفتاب سر میزد مرد بیچاره به بیشه میرفت و چوبهای خشک و جمعآوری میکرد و در حالی که یک توده بزرگ هیزون پشتش گذاشته بود به خونه برمیگشت و در این کار اینقدر مهارت به خرج میداد و چوب های خشک رو جمع میکرد که پرنده ها هم برای جمع آوری چوب واسه ساختن لونه هاشون دچار مزیقه شده بودند هرگاه مسافری در یک روز سرد از جنگل عبور میکرد چوب کافی برای روشن کردن آتیش و گرم کردن خودش پیدا نمیکرد. کرد یه روز هیزوم شکن تنابی برداشت و طبق معمول به جنگل رفت ولی در طول راه به ماری برخورد کرد و با کمال تعجب مار لب به سخن باز کرد و گفت سلام برادر مرد ایسومشکن جواب داد سلام مار مهربون مار گفت دوست عزیزم قصد دارم یه مطلبی رو بهت بگم و اون اینکه تمام احالی جنگل از دست تو و اینکه که همه چوبای خشک رو جمع میکنی ناراحتن چون حتی برای پرنده ها هم یه ترکیب و چوب خشک کوچولو باقی نمونده قیزم شکن گفت خب چیکار کنم برادر من آدم فقیریم کار دیگه ایم ندارم جز جمع کردن چوبای جنگل مار گفت بسیار خوب پس اگه من راهی به تو نشون بدم که بتونی خودتو از این فقر و فلاکت نجات بدی قبول میکنی ایزوم شکن گفت بله چرا قبول نکنم من سراپا گوشم بگو ببینم چی میخوایی بگی مار گفت کافیه چوب خودتو بلند کنی و محکم به سر من بزنی و منو به قتل برسونی بعد سر و دوم من قد کن و دور بنداز و بقیه رو به خونه ببر و یه گوشه ی حیات دفن کن بعد یه کلبه روی اون جایی که منو دفن کردی بساز چند ماه بعد یه درخت انار توی اون کلبه سبز میشه و میوه ی فراوونه میده اگه این انار رو بچینی و پاره کنی توی اونا پر علماس و زمرد و مروارید و سنگای قیمتی خواهد بود با فروش اون جواهرات میتونی ثروت و مال و اموال خوبی به دست بیاری و دیگه لازم نیست با این فلاکت زندگی کنی. هیزم شکن جواب داد: اِه،, اه نه مار مهربون. ممکنه من آدم فقیری باشم ولی هیچ هیچ‌وقت همچین کاری با تو نمیکنم. مار گفت: دوست عزیز، لازم نیست تو واسه این قضیه ناراحت باشی. این زندگی مال منه و هر کاریام دوست دارم با جسم خودم میکنم هرچی میگم گوش بده هیزم شکن قصه ما به صحبتهای مار مشکوک شد حتی فکر کرد که به اون نزدیک بشه ممکن اون رو نیش بزنه اما چون اصرار و پافشاری مار رو دید دیگه تردیدی به خودش راه نداد و چوب و بلند کرد و مار بیچاره رو با یک ضربت به قتل رسوند بعدم سر و دومش رو برید و دور اندا بقیه بدنشو به خونه برد و زیر زمین دفن کرد و همون جایی که دفن کرده بود یک کلبه ساخت یک دو و سه ماه گذشت و یه روز هیزمشکن به حیات رفت و متوجه شد که درخت اناری توی حیاتش سبز شده و پر از میوه است با خودش گفت خوبه یکی از این انارها رو پاره کنم و ببینم توش چیه یکی از انارها رو چید و پاره کرد و متوجه شد که داخل اون انار پر از الماس و مروارید و زمورد و انواع سنگهای قیمتیه خدا رو شکر کرد و اونقدر شاد و خوشحال بود که تا صبح نخوابید صبح روز بعد از جا بلند شد، و پر از جواهراتی که توی اون میوه انار بود کرد و به سمت بازار روون شد تا اونا رو بفروشه. اما به هر جواهر فروشی که رجوع کرد، همه با دیدن سراوضع و وضعیت ظاهری و لباس فقیرانه و روستاییش، حتی زحمت نگاه کردن به جواهرارا هم به خودشون ندادن تا اینکه یک جواهر فروش زیرک و با و رند بهش گفت خب چی برای فروش داری؟ هیزم شکن جواهراتش رو نشون داد و گفت چند تا سنگ قیمتی دارم جواهر فروش سنگار رو نگاه کرد و گفت خب در مقابل اینا چقدر پول میخوای؟ هیزم شکن گفت هرچی که بدی گفت من برای هر کدوم از اینا هزار سکه میدم هیزمشکن احساس کرد که ارزش این جواهر را بیش از ایناست اما از روی ناچاری قبول کرد و بسیار خوب اشکالی نداره جواهر فروش پولش پول و شمرد و به هیزمشکن داد دست آخرم پرسید بازم از این جواهرات داری یا نه؟ هیزمشکن گفت بله من هرقدر بخواید از این جواهرات دارم بازم میخری جواهر فروش گفت البته که میخرم هیزمشکن به خونه برگشت و دو انار دیگه چید و اونا رو هم باز کرد و جواهراتش رو در آورد و همه رو نزد جواهر فروش برد و یک جا به اون مرد فروخت چند روز بعد هیزمشکن فقیر قصه ما به یکی از ثروتمندترین افراد اون شهر تبدیل شد و زمین و خونه های بسیاری رو خریداری کرد همه از دیدن اینکه اون مرد فقیر و بدبخت یهو به همچین ثروتی رسیده متحیر شده بودند و نمی‌دونستند که چه رازی تو کار اونه. توی اون شهر بازرگان بسیار ثروتمندی زندگی می‌کرد که با دیدن این وضع با خودش فکر کرد این مرد تا چند روز پیش یزم‌شکار می‌کرد و تمام روزو به جنگل می‌رفت و چوب خشک جمع می‌کرد تا لغمه نون پیدا کنه. اما حالا چطور شد؟ این همه ثروت رو از کجا آورد؟ با فروش هیزم و چوب خوشک نمیشه به همچین ثروتی رسید حتماً کاسه زیر کاسه است و من باید تاتوی این قضیه رو در بیارم و بدونم این مرد داره چیکار میکنه مرد بازرگان پیش خدمت خودش و دنبال پیر زنی فرستا وقتی که اون پیر زن به خونه بازرگان اومد گفت ببینم تو اون هیزم شکن رو میشناسی که الان ثروتمند شده؟ پیرزن جواب داد بله من اونو میشناسم چیکارش داری؟ بازرگان پرسید میدونی چجوری این هم به رو به دست آورده؟ پیرزن گفت اینکه کاری نداره من میتونم خیلی راحت تطوی موضوع رو در بیارم مرد بازرگان گفت بسیار خوب پس اگه میتونی پی به این ماجرا ببری یه پاداش درسته حسابی پیش من داری پیرزن بدون اینکه وقتو وقت تلف کنه به خونه برگشت و یک لباس درب و داغون پاره پوره پوشید و رفت به سمت امارت جدید و شیک که هیزم شکنه هیزمشکن شکن پرسید چیکار داری؟ پیرزن گفت من یه بیوه فقیرم که خونه ندارم. ممکنه در مقابل یه اتاق و غذا من براتون کلفتی کنم. من آشپزی و رخشویی خوب بلدم. خونه رو هم تمیز میکنم شما رو به خدا منو از اینجا رد نکنید. چون جایی برای رفتن ندارم. هیزمشکن شکن گفت بسیار خوب. اتفاقا ما هم دنبال یک مستخدم خوب میگشتیم پس چه بهتر که تو برای ما کار کنی سه ماه گذشت و پیر زن هر خدمتی که از دستش برمیومد برای اونا انجام داد به طوری که کاملا محبوب این زن و شوهر شده بود و خیلی بهش اعتماد داشتند و دیگه مثل یک مستخدم باهاش رفتار نمی‌کردند بلکه یکی از افراد خانواده اونها شده بود یه روز پیر زن میره سراغ همسر شکن و میگه میگه راستی یه موضوعی هست که خیلی فکر منو به خودش مشغول کرده ولی روم نمیشه ازتون سوال کنم زن هیزومشیکن میگه عزیز من چرا رو دروسی میکنی؟ بگو موضوع از چه قراره؟ سوال تو بپرس میگه من همیشه تعجب میکنم که شما این ثروتو از کجا به دست آوردی؟ اول فکر میکردم این ثروت رو با عرق پیشونی کسب کردین ولی اینکه که امکان پذیر نیست بعد فکر کردم شاید گنجی پیدا کردین اونم به عقل نزدیک نیست دست آخر به خودم گفتم حتما رازی پشت پرده است که اگه از شما سوال کنم به من خواهید گفت میدونین که من برای شما مثل یه مادر زحمت کشیدم و هیچ وقت اسرار شما رو فاش نمیکنم همسر ایزوم شکر اولش مردد شد اما بعد از یه مقدار فکر کردن کل جریان رو برای پیر زن تعریف کرد و اونو به کلبه چوبی که گوشه حیاتشون بود برد و گفت درخت انوری توی اون کلبه هست که همیشه میوه میده و هر قدرم که میوه اون رو بچینیم بازم محصول میده اینجوریه که ما به و دارایی رسیدی پیرزن گفت آها حالا این یه مقداری به عقل نزدیکه من میدونستم که یه رازی اینجا وجود داره زن ایزمشکن گفت عزیز دلم لطف کن این موضوع به کسی نگو چونه که شوهرم بفهمه که من این راز رو گفتم منو میکشه. پیرزن گفت نه دخترم من به هیچگی چی نمیگم موضوع بین خودمون دوتا میمونه اما همون روز پیرزن به خونه مرد بازرگان رفت و گفت من که به شما گفتم بالاخره راز هیزم شکن و کشف میکنم و بعد تمام ماجره رو برای بازرگان تعریف کرد بازرگان گفت خب منم همینو میخواستم بدونم بعد هم یک کیسه طلا به پیرزن پاداش داد مدتی گذشت یه روز مرد بازرگان رفت خونه ی هیزم شکن و گفت سلام دوست عزیز اونم گفت سلام بر شما؟ گفت میخواستم ازت سالی بکنم ولی باید حقیقت رو به بگی گفت مسئله نیست شما دو تا سال از من بکنی گفت اول بگو بدونم چجوری این همه ثروت رو به دست آوردی و تبدیل به یه مرد ثروتمند مند شدی هیزم شکن گفت با عرق پیشونی مگه راه دیگه ای هم برای کسب به این همه مال وجود داره بازرگان گفت نه ببین تو حقیقتو نمیگی و من حاضرم در این مورد با شرط ببندم مردق سیما گفتش اشکالی نداره سر چی شرط ببندیم؟ گفت هر چی که شما بخواین هیزم شکن گفت اگه تونستی ثابت کنی که من حقیقت رو نمیگم تمام ثروت و دارایی خودم رو به تو میدم در غیر این صورت صاحب همه ی داراییت میشم موافقی؟ بازرگان گفت بله خیلی هم خوبه اما انجام این معامله به شاهد احتیاج داره تا هیچ کدوم از ما زیر حرفش نزنه مرد ایزم شکن گفت باشه من قبول دارم بعد از این قضیه هر دو از خونه خارج شدند و عدی شاهد رو برای انجام این معامله جمع کردند. ایزم شکن گفت خب دوست عزیز حالا تو بگو من این ثروت رو از کجا به دست آوردم؟ بازرگان گفت تو حیات خونه تو یه کلبه است که تو اون کلبه یه درخت اناره گیزمشیکن گفت خیلی کافیه تو شرطو بردی تمام دارایی من مال تو خدا رو شکر که اون همه سروتو به من داد و دوباره اونو از من پس گرفت چون میتونم دوباره به جنگل برم و چوب خشک جمع کنم با گفتن این حرف به سمت خونه برگشت و دست همسرش رو گرفت و دست خالی به کلبه قدیمی خودش توی جنگل رفت. هیزم شکن بار دیگه به زندگی گذشته برگشت. صبح زودتر از اینکه خورشید سر بزنه از خواب بیدار میشد و به جنگل میرفت. همسرش فهمیده بود که این بدبختی رو اون پیرزن سر اون آورده. اما جرت نمیکردین این حقیقت رو به شوهرش بگه چون میترسید که اون از فرط عصبانیت زن بیچاره رو به قتل برسونه چند هفتهی گذشت تا اینکه مرد بخت برگشتهٔ قصه ما یه روز با خودش فکر کرد من سردر نمیارم چه گناهی کردم که خدا اینطور ناگهانی منو منو به خاک سیاه نشون باید برم و خدا رو پیدا کنم و دلیل این کملطفی رو از اون بپرسم با این فکر به سراغ همسرش رفت و تصمیم خودش رو به اون گفت و زن گفت مرد تو خودت میدونی که این تصمیم عاقلانه است و خوب کرچه زودتر حرکت کنی مرد ساده لوح و نگونبخت وسایل سفر رو جمع کرد و یه آزوغه چند ماه هم تو خورجین گذاشت و چوب دستیشو برداشت و در جستجوی خدا از خونه خارج شد مسافر ما راه زیادی رو طی کرد تا به جنگلی رسید و در حین عبور از جنگل قاطری بدون صاحب دید و گفت روز به خیر قاطر سرگردون قاطر گفت سلام مسافر کجا میری گفت میرم تا خدا رو پیدا کنم چون شکایت دارم قاطر گفت پس اگه خدا رو پیدا کردی از قول من بگو که مدت کمرم درد میکنه و هیچ علاجی هم نداره از طرف منم تقاضا کن یه داروی تجویز بفرماید شاید این درد من خوب شه بعدشم بپرس که من آیا محکومم تا آخر عمر رنج بکشم یزم شکن گفت بسیار خوب قاطر شکایت تو رو به عرض خدا می رسونن. با گفتن این حرف دوباره به راه خودش ادامه داد تا به شهر بزرگی رسید و به محض اینکه وارد شهر شد مردی رو دید و سلام کرد اون مرد پرسید کجا میری غریبه؟ گفت میرم خدا رو پیدا کنم و ازش گله و شکایت کنم بهش گفت اگه خدا را پیدا کردی لطفا از قول منم یه پیامی بهش بده من یه باغ زیبا دارم که پر از درختای رنگارنگه و هر سال شکوفه میده و میوه‌های زیادی هم به دست میده ولی قبل از اینکه میوه‌ها کامل برسن به زمین میفتن و من نمیدونم چیکار کنم شاید خدا راه چاره‌ای رو پیش پای من بگذاره هیزم شکن در حالی که به راه خودش ادامه میداد گفت چشم دوست عزیز من پیغام تو رو به خدا می رسونم و باز به راه خودش ادامه داد و مدت طولانی زیادی راه رفت تا به اون سر دنیا رسید یا در لحظه ای که نزدیک بود به دریایی که دور جهان رو گرفته برسه صدایی از آسمون شنید که میگفت کجا میری ای مسافر هیزم شکن با تجاب اطرافش رو نگاه کرد و کسی رو ندید گفت میرم خدا رو پیدا کنم و ازش شکایت کنم صدا جواب داد خب حرف بزن این صدای خداست چرز حالی و چه شکایتی داری مسافر تمام وقایع رو تعریف کرد و گفت که چطور از یک هیزم شکن فقیر به طور ناگهانی بخت بهش رو کرد و به ثروت رسید و اینکه چطور یک بازرگان مکار اون رو از هستی ساقط کرد. آخرشم هم گفته خدای یکتا الان اومدم تا تو راهی به من نشون بدی که بتونم خودم از این بدبختی خلاص کنم. خدا که میدونست مرد تاجر شکن و فریب داده دلش به رحم اومد و گفت مرد بیچاره به شهر خودت برگرد و یه بار دیگه با تاجر شرط بندی کن و بپرس که فردا خورشید از کدوم طرف طلوع میکنه اون به طور قطع مشرق رو نشون میده اما من کاری میکنم که خورشید از مغرب طلوع کنه و تو دوباره به مال خودت برسی هیزم شکن گفت خدایا شکرت در زمین یه مطلبی رو بهت بگم توی راه که میومدم یه قاتل رو دیدم که دچار کمر درد بود و هر کاری کرده بود خوب نشده بود از من خواست بپرسم که آیا باید تا آخر عمر همینجور مفلوک و دردمند باقی بمونه؟ صدای خدا از بالای ها گفت من قاتل رو خلق کردم تا برای بشر کار کنه و بار بکشه نه اینکه به بطالت اینور اون اونور بره اون قاطر باید همراه تو به شهر بره و کار کنه تا کاملا معالجه بشه شکن گفت یه ارزحالدیگهم دارم توی راه که میومدم از کنار باغی رد شدم که باغبونش گله میکرد که هر ساله باغش محصول زیادی میده اما میوههاش قبل از رسیدن به زمین میرسه در این مورد چیکار باید بکنه صدا جواب داد دلیل اینکه اون میوه ها به سمر نمیرسه اینه که زیر هر درخت یکیسه یک تلا مطفون شده برو به اون مرد بگو ها رو خارج کنه تا میوه ها برسن ایزوب خدا رو شکر کرد و راه بازگشت رو در پیش گرفت این دفعه وقتی به جنگل رسید دوباره با قاطر روبرو شد و فرمون خدا رو به اون قاطر گفت قاطر هم جواب داد بسیار خوب مسافر، منو با خودت ببر شهر من تا آخر عمر برات کار میکنم چرا که این کمردر دیگه جونمو به لبم رسونده قیزم شکم سوار قاطر شد و با هم به راهشون ادامه دادن رفت و رفت و رفت تا به شهری رسید که باغبان اونجا بود و جریان و برای باغبون تعریف کرد باقبون با حیرت شروع به کندن زمین کرد و متوجه شد که واقعا زیر هر درخت یک کیسه طلا دفن شده خوشحال شد و برای قدردانی تمام خورجینهای شکن و پر از طلا کرد مسافر دوباره سوار قاطر شد و به سفرش ادامه داد همینطور میرفت میرفت و میرفت تا به شهر و دیار خودش رسید و در حالی که از خیابونهای شهر رو میکرد مرد تاجر رو جلوی خودش دید هیزم شکن سلام می کرد و تاجر هم جواب سلامش رو داد و با دیدن خورجین گفت دوست عزیز مدت است که نمی شاید دنبال کار دیگه ای رفتی هیزم شکن گفت بله من عقل و شعور دارم و این دو خرجین پر از طلا هم در طول همین سفر به دست آوردم مرد و بازرگان با کنجکاوی گفت دوست عزیز این همه طلا از کجا به دست آوردی هیزم شکن گفت از اونجا پشت اون کوه ها که خورشید طلو میکنه مرد بازرگان زد زیر خنده و گفت منظورت پشت اون کوهاییه که خورشید غروب میکنه دیگه گفت نه عزیزم همون جایی که خورشید طولوم میکنه اگر نمیدونی بدون خورشید از اون طرف در میاد بازرگان با تعجب گفت ولی خورشید همیشه از سمت مشرق طولوم میکنه جر و بحثشون ادامه پیدا کرد تا اینکه که هیزم شکن گفت اگه به حرفت اعتماد داری بیا شرط ببندی من هر دوتا خورجین خرجین و در مقابل بهت میدم اما اگه شرطو باختی هرچی از من گرفتی باید به من پس بدی تاجر تمکار که همچنان میل داشت ثروتش بیشتر بشه و ضمن اطمینان داشت که خورشید از شرق طلوع میکنه بدون فکر رو صبر قبول کرد و این شرط هم مثل دفعه قبل در حضور اده شاهد بسته شد حتی شاهده هم فکر میکردن که این هیزم شکن دیگه جدی جدی دیوونه شده همه گی با بی منتظر منتظره این بودن که شب فرا برسه و بعد از اون روز دوباره از راه برسه همه به سمت مشرق نگاه میکردن تا ببینن خورشید کی طلو میکنه مرد بازرگان هم در کنار اونا بود و با حیرت سایه خودش رو زمین دید و چون سرش رو برگردون دید که در کمال تعجب خورشید از پشت کوههای مغرب طلوع کرده با تعجب گفت مگه ممکنه همه شاهدا حیرت کردند ولی گفتند به هر حال تو شرط باختی خورشید از مغرب طلوع کرد هیزم شکن مهربون رو به بازرگان کرد و گفت من فقط چیزایی را از تو میگیرم که قبلا به من تعلق داشته بقیارم میذارم برای خودت امیدوارم درسی به تو داده باشم که آدم نباید کار باشه و چشم بد به مال مردم داشته باشه و بخل و حسد نشون بده چرا که اونچه که خداوند مقدر فرموده بالاخره پیش میاد و اونچه که خدا بخواد اتفاق میفته با گفتن این حرف مرد زم شکن به سراغ خونه و همسرش رفت و با دارایی هایی که از بازرگان پس گرفته بود با خیر و خوشی زندگی کرد خب دوستان این قصه هم تموم شد امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید و ازش پند و درس گرفته باشین. تا برنامه دیگر و ای دیگر همه رو به خدای مهربون می سپارم روز روزگارتون به کا.